ابن جنید از ثوابی در بتایویی که ابن جندب فرموده یه جمله است که احب فی الله و عبد فی الله و سمسک بالور با کلی مصح نطلب برای خدا باشد دشمنی برای خدا باشد بچست و متمسک بشو و محکم بگیر قربت البسخارا تا اعمالتو قبول باشد راجع به حب فلاح و بغض فلاح مطالبی رو از هفته قبل ارز کردیم دوستی ها و دشمنی ها ارز این یه نقدارش شطریه به نقدارش قیل اختیاریه حتی بنابراین مثلا هر کسی بچهشو دوست داره خودر مدرشو دوست داره خونه و زندگیشو دوست داره و هر کسی انسان خلاهی دعالا خب فرموده علاقه داره اونی که اساس کاره سر همین کلمه است که قبلا عرض کردیم در مقام مضاحمت اگر دوستی اینها با دوستی خدا و دستورات خدا مخالف شد کدام رو تو مقدم خواهی کرد؟ امکان آبا و ابنا و اخوان و کن و اموال نخترفتمون ها و تجارتون تقشون کساده ها و مساکن ترزونه ها احب بیلیکن من الله و رسوله و سبیله و طرف اگر اگه پدرت رو بچت رو کمخشات رو اموالت رو خوده و زندگی و تجارتت رو بیش از خدا دوست داری به تعبیر بندی بر کاره. پس میزان در مقام مزاحمت معلوم میشه که بنده چیکاره؟ اگر اگه کرد دوستی مال با دوستی خدا کدام موقعا میشه در نظر من و الذین آمنون اشد به حبن لله و هدون مؤمن خدا رو دابت مطلب بود و به مناسبت روایاتی داریم بحث خوندیم و این کلمه این که شب میخوام از کنم این کلمه است که دوستی خدا اساس تمام سعادت ها دوستی خدا منشه است و از اون منشعب میشود دوستی رسول خدا دوستی امیران ممنونین دوستی و محسومین سلواتو را هم این مجمعین دوستی کارای خوب دوستی نمود دوستی موزه دوستی احسان بقیه من اونکاری که خدا دوست داره من چون خدا رو دوست دارم دوست دارم این اقتضای این مطلب و براتون شعر کزایی برنی خدا رو خوندم که نمیرم مالکیه که امرو علا دیار بیار لیلا و قبل و زلجدار و را من میرم توی فرون که که مورد... کسی که مورد علاقه منه توی شهر ساکنه میرم اونجا رو در دیوار این شهر رو میبوسم نه اینکه من در دوست دارم آجور دوست دارم نه علاقه من به اون کسی که تونی شهر ساکنه من شهر شده که من در و دیوار این شهرم دوست داشته باشم این حب انسان از حب خدای تعالی سرایت می کند به تمام کار و بغض همه کار بدا چون خدا بدش می آه. محب تو و بیات دره محب با و الله ادب الله کسی که دشمن خدا رو دوست داشته باشه این دشمن خداست کسی که یزید رو دوست داشته باشه اگر یزید رو دوست داره اگر یزید رو خدای تعالی دشمن داره و یک کسی این یزید رو دوست داشته باشه یعنی خدا رو دشمن داره و محب و محب الله شبیه به این بود که خونده بودین حبیب الله کسی که دوستان خدا رو دوست داشته باشه این هم دوست خدا از خدا رو دوست داره به وقتی یکی از کتابای مرحوم فیض به مناسبت که مراجعه نکرده من بود ولی دیدم این رو نوشته دو مناسبه این اینو بحث کردیم خوبه یه روایتی داریم که با علیه حسنتون لات بر رمه ها سیعه دوستی امیر المومنین یه حسنه است که یک گناهی ضرر نداره به اون من فیض میگه این چه جوریه که جوریه که خوبه علیه جوریست نیست گناه رو اون نداره خودش به توجیه و به نظر من اون وقتی که دیدم توجیه مناصبه و خیلی خوبی دوسته بود وقتی بود دوستی امیر المؤمنین اگر به حقیقت دوستی باشد این نه دوستی یه نفر شخصه که من یک کسی رو دوست دارم دوستی امیر المؤمنین به واسطه کمالا کسی که بودار و در حقیقت دوستی امیرم و دوستی خداست. دوستی رسول خداست چون امیرم مومنین خدا و پیغمبر رو دوست داره. دوستی امیرم دوستی تمام آدم خوبای دنیاست. دوستی امیرم و دشمنی با تمام آدم بداست. دوستی امیرم دوستی دوستی به هر کار خیریز نماز رو دوست داره. نوزه رو دوست داره احسان رو دوست داره سلعه رو دوست داره دوستی عمیر مومنین نه من علی رو به واسطه کمالاتش دوست دارم پس من در حقیقت اون کمالات رو دوست دارم و بعد فرموز من رو دوستی دشمنی با همه گناهانه است. اگر یه وقتی اگر برای دوست عمیر مومنین گناهی هم سرزد میگه من که دوست امیر المومینم چرا این کارو کردم علیه این کارو دوست نداشتم. همین حالت پشیمانی و ندامت براش پیدا میشه دوست واقعی امیر المومین همین که پیدا شد کفا به ندم توبتن پشیمانی است برای تو بره. این لایز رومه هفو سیعه اینجوری معنا میکنه مرحوم و پیش میگه اگه یه وقت ما دستش در رفت گنام حتی امکان نمیکنه ولی اگرم یه وقت دستش در رفت این دوست امیر المؤمنینه دوستی واقعی امیر دشمنی با و گناهانه من چه اینجور غافل شدم و این کار رو انجام دادم و بر این کارش پشیمان میشه و یک ندامتی در ذهنش پیدا میشه و همین ندامتش کافی است برای توبه و این دوستی خدای تعالی هم به این اطراف و جوانب اگر دوستی دوستی حقیقی و واقعی باشه تمام کارهایی که انسان میکنه با اراده و اختیار ناشی از دوستی چون دوست داره میکنه بنابراین اگر دوستی خدا دوستی هر کار خیره خدا این دوست داره منم که خدا رو دوست دارم پس این من این کار خیر رو دوست دارم همین دوستی من هم میشه که شروع کنی به این خیر اگر واقعا دوستی درسته حسابی باشی اگر کسی به این مقام رسید چطوره بایدش قبل خونده بودم که محکمترین ریسمان ارز می شود به این که ایو ایمانه او ریسمانه ای ایمان او محکمترین ریسمان ایمان پب برای خدا و دوستی برای خدا و دشمنی برای خدا محکمترین رشته است زیرا این منشأ هر کار خیلی و منشه دوری از هر کار بعدی به خدا رو دوست دارم کاری که او بدش میان نباید بکنم و که این شو به میشه دنیا چیز رویست دارم؟ واسه ترمیس از زنگ در میگرم؟ ما در کار ما شریکه ولو نبودیم در فرمون در کار ما شریکم کسانی که هنوز از پدرها و مادرها به دنیا نیامدن عجب. الان دوستان همیون مونین که کار همیون میمون دوست دارن میپسندن در جنگ جمل با همیون این چی میشه کار تمام خیرهایی که امیر المومنین دوست داره اگر به حقیقت من دوست امیر المومنین باشم همه کارهای خیلی که سواب ناموی عمله من بنوشته کم سعادته کم چیزیه نه ولی من رایف نباشم او بحث دیگره من نامی که بر او بود ببینم دارم که این یه کلمه را بگو فرمود یا احمد صلی الله علیه و آله و سلم که خداوند تعالی در شمول مراد بر رسولش فرموده هل صدری متى يكون العبد عابدا میدونی بنده چه عابد میشه مثلا الان اون که من نمیشتم شاید از قلاق پر عرض کرده باشد نه حالا اونو نمیدونم حل کرده دیگه مثلا یکون العبد و عابدان که حالا ازا از از از بله ازا از یبقه زدنیا لبق زیله دنیا رو دوست نداشته باشه چون من دنیا رو دوست ندارم رایوهد دو بل اخیار لحبی لحون بندگان خوب رو دوست داشته باشه چون من اون رو دوست دارم این که عرض کردم خوب خدا و حب برای خدا می کشه به کارهای خوب اساس هر خوبی اساس بد آمدن از هر بدی این محکم ترین از می شود به این که ایمانه واقعا همینطور اگه دوست داری در مطوره با داره که از کذب و منزع من نهوی و حب بونی روغ میگه اون کسی که میگه منو دوست داره و شب را تا صبح میگیرم یه خواهد. آیا دوست دوست نداره یه خود روشنه با دوستش حرف بزنه اینجوری میشه دیگه قهران اگه درست حالی میشده باشه اینجوری میشه چه دوستیست که دوست نداره با دوستش بیشنه حرف بزنه پس در دوستیمونی خود خلل هست. یا اگه به این کمال رسودم که دیگه از دن و بیرون که بزنیم برایش این جهاز رفته بودم در نیرون مومنی. و برمود احبا و کم معنا میل برادرت با ماست دوست داشت اون چرا که ما دوست داریم از بله با ما شریف و میان کسانی که هنوز از مادر متولد نشدن و در کار ما شریف هست من چی کماد خوشبه هست باقی این کسی که اینجوری دوست داشتن به واقعی این کلمه رو هم بگم و تموم شد بله و این کلمه ی کلمه خدا وقتی نگاه کنی که خدا عیتالله ی شام باز به مناسبت بودم خدا تعالی تو نگاه کن که این شوق لایک رو دوست داری؟ اینا الله عیوبلم و تأقین اینا الله عیوبلم و فسین اینا الله عیوبلم و ثابو عبیه اینا الله عیوبلم و تاهری اینا الله عیوبلم و تباکلی الله ها اما ماشاءالله مقصده. ان قاتلون في سبيل رو خدا دوست داره اگه من براستی دوست داشته باشم خدا رو همه اینا رو باید دوست داشته باشم اگر براستی اینا رو دوست داشته باشم سوابش گوش سرش ها انارونا و از اون طرف یاره نداره خدا الله لا یهبو ظالمین اینالله لا مفسدین لا یهبو کلم مصرفن من کذا الله لا لا ما دوستی خدا دوشمنیه با خیلی اینا. اینا تمام شد؟ این کلمه من از سیره بلیت الله تعالی آره که این آلم بزرگوار نکاتی رو تذکر داره و قد اینقدر نکات لطیف و خوبی یه بنده رو به هم خیلی قوی نیست بنده که برخود گذم این صرخ نکات این بزرگوار کمتر تو کتاب ها پیدا میشه نه که نباشه ولی کم پیدا میشه این بزرگوار نظرمه که برادر میخوای یه چیزی بهت بگم خوب گوش به تغییر من و اون مطلب این است که هیچ میدونه رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و, علی و, علی و عمیر المؤمنین آیا غیر که خود دستورات خدا و احکام خدا در نظرشون محبوب تر بود از حسن و حسین و از جانشون و از مالشون اینو میدونی یا نه و است که در راه اینها در مقام جهاد بر و مهیا شدن برای اینکه کشته نشوند خب اگر اینو قبول داری و اینو باور داری اگر یک کسی سر یک کسی رو بکشه و بعد بگوید من دوست تو هستم آیا کسی حرف اینو میپذیره؟ خوب اگر رسول خدا احکام خودش رو و دستورات خودش رو از حسین و حسین دوست داره اگر من روا بخورم مثلا یا دروغ بگم یا غیبت بکنم میتونم بگم خدا و پیغمبر رو دوست دارم؟ این این مثل اون نمیشه که کسی بچه کسی رو بکشه بکشه و بگه من دوست این آقا هستم؟ چه دوسته این آقا یه نفر آخر از توی این حرف رو بشنبه گوش نمی پس این رو حسابشو بکن که دوستی دوستی درست حسابی راست میگی؟ آدم که راست بگه در مقام دوستی در صدد گناه می در صدد معصیت می حالا البته من سال ماها که محصوم که نیستی قادل اونم حل حرفه ولی اگر یه وقتم گناه دستمون در آدم این که خدا خیرم برای دستورات دست رو دستاره رو توبعه کنه تو من که این کار آدیه بنام فایده کردی در دستی. و اگر دوستی دوستی حقیقی بودی در تمام کارای خوب رسول الله و امین و بند شریف خیلی آدم بی خودی هم از سم تو می کنیم تابوس به مناسبت یا نمی که مناسبت این کلمه رو بحث می کنه و من برادر چیزی می خوام به بگم درست توجه کن و ببین آیا واقعا دوست پیغمبر هستی؟ آیا کسی بچه دارم برو بکی گوشه میتونه بگی من دوست پیغمبرم؟ آیا قبول داری که در صورات خدا عزیزتر است در پیش پیغمبر و امیروی مومنین از فرزندان خودش از خودش برزا جانشون رو معیه بودن که فدا کنن برای دیر آیا من دوست دارم که ما این که گناه میکنم و گناهی که اهمیت نمیدم خیلی خوردم و کلمو حاشیمونه و وقتی بخیر اون خراب میکنه این دستی سوستی واقعی نیست. صلّى علیم حمدا يا ما